فرانسس و قرباقه نوشتیه برادران گرین برگردان اسمایل پورکازم ناشر کانون فرهنگی چوک بازیگران به ترتیب اجرای نقش راضیه هاشمی احمد قلامی میلاد تمدن همایون زفرپور کارگردان رضا عمرانی در یک غروب بسیار دلنگیز، پرنسس زیبا کلاه پردارش را بر سر گذاشت، کرفشهایش را پا کرد و به تنهایی برای قدم زدن به داخل جنگل مجاور قص رفت. او پس از دقایقی به یک چشمه خونک و پر از آب رسید که یک بوته گل روز بسیار چشم نواز در کنارش رشد کرده بود. پرنسس در کنار چشمی آب نشهست تا اندکی بیسایت و خستگی از صدر نماید. او یک توپ طلا در دستانش داشت که همواره با آن سرگرم بازی میشد. توپ طلا را به هوا پرتاب می کرد و زمانی که فرود میآمد آن را با دست می گرفت. یک بار پرنسس آن توپ را به هوا پرتاب کرد، که وقتی فرود آمد نتوانست آن را با دستانش بگیرد توپ طلا کمی دورتر چندین بار به زمین خورد و مسافتی از او فاصله گرفت توپ طلا بر روی زمین غلطید و غلطید و غلطید تا عاقبت درون چشمه آب افتاد پرنسس به جستجوی توپ طلا درون چشمه آب نگاه کرد اما توپ زرین کاملا به عمق آب فرو رفته بود زیرا آب چشمه آنچنان عمیق بود که پرنسس قادر به مشاهده کفان نشد. پرنسس شروع به گریه کرد. با خود گفت: افسوس! اگر من می توانستم فقط یک بار دیگر توپم را به دست آورم، آنگاه تمامی لباس های فاخر و جواهرات گرانبها و هر چیز دیگری را که در دنیا دارم، به می میدادم. درست زمانی که پرنسس در حال صحبت کردن با خودش بود، قورباغه‌ای سرش را از آب بیرون آورد و گفت: برناش، چرا شما این چنین تعجیری می‌کنید؟ تاریخی که نمیتوانی کاری برایم انجام بدهی؟ تو فقط یک قورباغه زشت و کثیف پیش نیستی. در حالی که توپ طلای من به داخل چشمه آب افتاده است من مرداریت ها جواهرات و لباس های فاخرش را نمی خواهم اما اگر مرا دوست بدارید و اجازه بدهید تا شما را دوست بدارم در بشخاب طلایت غذا بخورم و در وقت خواب حریرت بخوابم آنگاه غایی می دهم که توپ طلایت را دوباره خواهی دار چه حرفهای پوچ و مزخرفی؟ این قرباقه احمق چه میگوید؟ او هیچگاه قادر نیست از درون چشمه آب بیرون آید چه برسد که برای دیدارم به قصر پادشاه بیاید با این حال او ممکن است بزماند توپم را برایم بیاورد بنابراین بیام میگوید که با تمام خواسته هایش موافقم آه اگر شما بتوانید توپم را برایم بیاورید من به تمام خواسته هایت عمل می کنم انگاه سرش را به زیر آب برد و بلا فاصله به عمق آب فرو رفت او اندک زمانی بعد مجدداً باز آمد در حالی که توپ طلا را به دهان گرفته بود قورباغه توپ را به کناره چشمی آب آورد و در نزدیکی پرنسس بر زمین پرتاب کرد پرنسس زیبا از اینکه دوباره به توپ طلای محبوبش دست یافته بود بسیار خوشحال شد. او دیگر مجالی برای فکر کردن درباره قورباغه به خود نداد و هرچه سریعتر به سوی قصر پادشاهی روانه شد. در همین لحظه قورباغه صدایش کرد. پرنسس! پرنسس! لطفاً صاحبقونید و همانطور که قول مرا همراهتان ببریید. اما پرنسس حتی لحظه ای برای شنیدن حرف های درنگ نکرد. روز بعد به محض اینکه که پرانسس بر میز مجلل شام حاضر شد صدای عجیبی را شنید. طب طب پرش پرش طب طب پرش پرش. به نظر می رسید که کسی از پله های مرمرین سالن غذاخوری بالا می آید. به زودی صدای ضربات آرامی به در سالن شنیده شد و صدای از آن سوی در فریاد زد در را باز کنید عزیزم در را باز کنید زیرا عشق حقیقی تو اینجاست بیاد آورید کلاماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود در کنار چشمی آب خونکو در سایه جنگل هم پرنسس به سمت در اتاق رفت و آن را گشود. او ناگهان چشمش به قرباقه زشت افتاد در حالی که او را کاملا از یاد برده بود. پرنسس با دیدن این منظره بسیار ترسید. سریعا در بست و به سر میز شام برگشت. پدرش پادشاه که متوجه شد چیزی باعث ترسیدن دختر زیبایش شده است پرسید. نخترم چه اتفاقی افتاده است؟ اه پدر یک قورباغه زشت آنجاست او پشت در سالن ایستاده است. البته این قورباغه صبح امروز طوانس توپ طلایم را از درون چشمی آب بیابد و برایم بیاورد. من هم در ازایش به او قول دادم که به با من در اینجا زندگی کند. من فکر می کردم که او هیچگاه از درون چشمی آب خارج نخواهد شد اما اینک پشت در سالن منتظر است. و خود داخل شود در همین لحظه که فرانس درباره باغ صحبت میکرد، یک بار دیگر ضرباتی به در سالان زده شد و این صدا به گوش آنها رسید. در باز کنید فرانسس عزیزم، در را باز کنید زیراشق حقیقی تو اینجاست. بیادا ورید کلماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود در کنار چشمه آب خنک و در کنار سایه جنگل انبور پادشاه به پرانسس جوان گفت شما چون قول داده اید بنابراین باید به حرفتان عمل کنید اینک برا و اجازه بده تا او داخل شود پرنسس این کار کرد و قورباغه جستی زد و به داخل سالن آمد او مستقیما در حالی که تاپ تاپ و پلش پلش صدا می‌داد از کف سالن به بالای میز غذاخوری پرید و در جوار جایگاه پرنسس نشست گرباقه بلا فاصله به پرنسس زیبا گفت یا بیا و روی سندلیت بینشین و اجازه بده تا در کنارت باشم پرنسس زیبا اطاعت کرد و بر روی سندلی خیش نشست گرباقه ادامه داد بشقه ها به قضایت را نزدیک که من بگذار تا من هم بتوانم از غذایت بخورم پرنسس این خواسته قورباغه را نیز انجام داد قورباغه زشت تا آنجا که میتوانست از غذاهای پرنسس میل نمود و سپس گفت ناچویش را خستم لطفا مرا به اتاقتان در بالای پله‌ها ببرید و در دستتان بگذارید. پرنسس با ملی قورباغه را در دست گرفت و از پله‌های قصر بالا رفت آنها به اتفاق وارد اتاق خواب پرنسس شدند و پرنسس حیوان زشت را درون رخت خواب و بر روی بالش حریر خودش گذاشت تا تمام شب را در آنجا بیاساید. به محض اینکه هوا روشن شد قورباغه از جایش برخاست. او جست زنان از پلا پایین رفت، از خانه پادشاه خارج شد و به چشمه آب خونک وسط جنگل برگشت. بدین ترتیب پرنسس زیبا نفس راحتی کشید. او با خود اندیشید که اینک همه چیز به پایان رسیده است و او دیگر هیچ مشکلی با قورباغه زشت و مزاحم نخواهد داشت. اما او اشتباه می‌کرد. شب فرا رسید و پرنسس مجدداً صدای برخورد ضربات آهسته‌ای را بر در سالن غذاخوری شنید و به دنبالش این صدا از قورباغه به گوش رسید. در را باش کنید پگنسش عزیزم در را باش کنید زیرا عشق حقیقی تو اینجاست بیاد آورید کلماتی را که بین من و تو رد و بدل شده بود در کنار کشمه آو خونک و در سایه جنگل انبو او او او پرانسس به سوی در سالن رفت و آن را گوش شد. قورباغه نیز فوراً به داخل سالن آمد. در بشخاب طلای پرنسس شام خورد و تا صبح روز بعد در رخت خواب پرنسس زیبا خوابید. شب سوم نیز به همین ترتیب گذشت، اما زمانی که پرنسس صبح روز بعد از خواب برخاست، از آنچه مشاهده کرد در حیرت ماند. او به جای قورباغه زشت، در کنار خویش یک پرنس زیبا را دید. پرنسس با تعجب بسیار به پسر جوان خیره مانده بود. جوان چشمانی براستی زیبا داشت، آنچنان که پرنسس نظیرش را تا آن روز ندیده بود. او با آسودگی خاطر بر بالش پرنسس آرمیده بود و از آنچه در کنارش میگذشت آگاهی نداشت. دقایق به سرعت گذشتند تا اینکه پرانس جوان از خواب بیدار شد و دختر پادشاه را در برابر چشمان خویش دید که با تعجب فراوان به او می‌نگرد. پسر جوان به پرانسیس زیبا گفت چندی پیش توسط یک جادوگر کینه توز افسون شدم و به شکل گورباقه در آمدم. جادوگر قرار گذاشته بود که من همچنان به شکل گورباقه زشت باگه بمانم تا زمانی که یک پرنسس مرا از چشمه آب بیرون آورد و اجازه بدهد تا سه شب متوالی در یک بشگاه با همدیگر غذا بخوریم و در یک رخت خواب در کنار یکدیگر بخوابیم شما اینک توانستید که افسون جادوگر ظالم را بشکنید و مرا آزاد سازید این زمان من هیچ چیز با ارزشی همراه خیش ندارم تا در رضای محبت شما تقدیم نمایم اما تقاضا دارم که همراه هم به نزد پدر من که پادشاه کشور همسایه است بیایید زیرا من بسیار مایلم که با هم دیگر ازدواج کنیم و صادقانه قول می دهم که تا پایان عمر به شما عشق بورزم و صمیمانه در جهت خوشبختی شما بکوشم آه آیا شما به راستی در تقاضای خیش راس استوار هستید؟ بله مطمئنم آنها به زودی کالسکی بسیار زیبا تدارک دیدند که با هشت اسب قدرتمند و شکیل کشیده میشد. اسبها دارای یراغهایی از طلا بودند و سرهایشان نیز با پرهای زیبا و رنگارنگ آراسته شده بود. در عقب کالسکی نیز خدمتکار با وفای پرنس هاینریش سوار بر اسب حرکت میکرد. هاینگریش همان کسی بود که پس از افسون شدن اربابش تا مدتها برایش گریه و زاری و به تلخی آش میریخت آنچنان که نزدیک بود از قصه دق کند پرنس جوان و پرنسس زیبا به اتفاق مملکت پدر شاهزاده خانم را ترک کردند و به سمت کشور همسایه رفتند پادشاه آنجا وقتی از سالم بودن پسرش با خبر گردید بسیار خوشحال شد و به زودی آنها را تی جشنی با شکوه به ازدواج همدیگر درآورد آورد پرنس و پرنسس تا سالهای طولانی در کنار همدیگر زندگی کردند و شادمانه تا پایان عمر به عهدشان نسبت به یکدیگر وفادار ماندند صدابرداری صداگذاری و میکس، سنم کجوی، تهیه کننده، رازیه هاشمی